جانها در اصل خود عیسی اند، یک دمش زخمند و دیگر مرهمند. گر گرهجاب از جانها برخواستی، گفتی هر جانی مسیح آراستی. به نام خدا با عز سلام خدمت خانمها و آقایان، خیر مقدم عرض می خدمت همه دوستان خصوصا اصاتیت محترم. دوری رو که در خدمت سروران عزیز هستیم، دوره آشنایی با شبکه شوره کیهانی و یا هوشمندی حاکم بر جهان هستی هست که در این رابطه توضیحات مفصلی رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد شبکه شوره کیهانی مجموعه هوشمندی حاکم بر جهان هستی است و یا به عبارت دیگه هوش جمعی هوشمندی جمعی یا برحال هر کدوم از این توضیحاتی رو که بخوایم داشته باشیم در رابطه با کار با شبکه شوره کیهانی که حالا تعریف میکنیم از پایین شروع میکنیم به بالا میاییم در این رابطه ما حلقه های متعددی داریم که این حلقه های متعدد داخل هر کدوم بشیم به ماجرایی برمیخوریم به ماجراهایی برمیخوریم که در این دوره یکی از این در واقع حلقه ها رو مورد بررسی قرار میدیم این حلقه در ابتدا بحثی رو مطرح میکنه که ما اسم فراکلنگری رو روی اون گذاشتیم در این حلقه در این شاخه از یک زاویه‌ای به انسان نگاه میشه و انسان رو مد نظر قرار میده و این دید و این نگاه رو همونطور که خدمتون گفتم با نام کلی فراکلنگری مورد بررسی قرار میده در دیدگاه فراکلنگری نگاه به انسان نگاه خاصی است و در آن به انسان به وسعت جهان هستی نگاه میشه جهان انسان شد و انسان جهانی از این پاکیزه تر نبود کلامی خب حالا منظور چیه؟ منظور این است که اعضاء تشکیل دهنده ی انسان بی نهایته و اون چی رو که ما شناختیم از انسان فقط یک کالبد فیزیکی است یعنی گوشت و پوست و استخوان اما انسان بی‌نهایت اجزای وجودی داره مختصری از این اجزا رو اگر بخوایم نام ببریم های مختلف از جمله کاربود فیزیکی کاربود اختری کاربود ذهنی کاربود روانی و بی‌نهایت کاربود دیگه که آخریش کالبود روح جمعی کالبود روح جمعی شناخته شده نیست ولی به وسعت جهان هستیست و معلوم نیست که اونه که جهان در دربر گرفته یا جهانی که اونو در دربر گرفته اجزای دیگری مثل چاکراهای مختلف که در واقع مبدلهای انرژی هستند، مبدلهای که انرژیه کیهانی رو انرژی های مختلف کیهان رو میگیرن تبدیل میکنند برای ذهن و روان و کالبوت های مختلف دیگه چون اون انرژی رو که ما میشناسیم از طریق غذا خوردن که در انتها به آتف آدنوزین و با تبدیلش به آدنوزین دیپوسفاد و آدنوزین که میشه این فقط بنزین سلولی رو تهیه میکنه اما ذهن ما و روان ما خواهیم دید بررسی خواهیم کرد برای خودش نیاز به تغذیه مجزا داره خب دیگه کانال های 14گانه انرژی که محدود و مسدود در بدن گداته به سوزنی متداول راجع به صحبت میشه دیگه از کنم خدمتتون که فرکانس مولکولی سلول در سایمتیک تراپی شعور سلولی که در ارمیوپاتی مطرحه، حوزه پولاریتی بدن حوزه بیوپلاسما و بی‌نهایت اجزای شناخته شده و ناشناخته مختلف دیگه خب در طول تاریخ نگاه به انسان نگاهی تک‌بعدی بوده یعنی به انسان اینطوری نگاه شده از یک زاویه مثلا فقط از زاویه جسم یا فقط از زاویه شعور سلولی یا فقط از زاویه چاکرا یا فقط از زاویه حاله, حاله های مختلفی داریم و از زاویه فرکانس مولکولی و سایر عزا. یعنی در طور تاریخ نگاهی حکبودی به انسان شده نه نگاهی همه جانبه که بخواد همه ابعاد بوجودی ما رو زیر نظر بگیره در فراکل نگری ما نگاه همه جانبه به انسان داریم اگر قرار باشی ما بیماری رو تعریف بکنیم باید انسان رو بشناسیم که بیماری رو تعریف کنیم لذا از هر زاویهی به انسان نگاه شده تعریف بیماری هم به همون نسبت هست مثلا اگر از بود چاکرا به انسان نگاه شده بیماری اینجوری تعریف میشه که زمانی حادث میشه که تعادل چاکرا به هم بخوره و انصداد پیش بیاد مسئله پیش بیاد اگر از زابیه کانال های چاردرگانه نگاه شده بیماری اینجوری تعریف میشه در بسوزنی سوزنی در واقع که محدود شدن، مسدود شدن یا عدم تعادل انرژی در هر یک از مریدین در هر یک از کانال های چهاردرگانه یا زمانی که از زابیه شعور سلولی به انسان نگاه شده بیماری اینطوری تعریف میشه که بیماری اختلال در شعور است. اونی که پولاریتی رو میشناسه میگه بیماری اختلال در حوضه است. اونی که خب همینجوری بیناهایت تعریف ما از انسان داریم یعنی در واقع ماجرای انسان ماجرای فیلی در تاریکی جناب مولانا است و اینه که ادهی در تاریکی فیلی رو لمس کردن و هر کدوم بر اساس مشاهده خودشون یعنی اون تجربه خودشون فیل رو تعریف کردن اونه که پای فیل رو گرفته بود گفت فیل یک ستونه اونه که دست پشت فیل کشید گفت فیل یک تخته اون نگه گوش فیل رو گرفت گفت فیل یک باد بزنه خب این ماجرای انسان هست که هر کسی انسان رو از اون زاویهی که به واقعیتش نزدیک شده تعریف میکنه اما بیماری چیست؟ بیماری اختلال در هر یک از بیناهایت اجزای وجودی انسان اختلال در هر یک از بینهایت اجزای وجودی انسان بررسی این موضوع در شاخه‌ای صورت می‌گیره اسم این شاخه رو اجازه بدین که بذاریم فرادرمانی حالا چراشو صحبت می‌کنیم خدمتون خب اگر نگاه تک‌بعدی به انسان داشته باشیم میایم یک زاویه رو یک جا رو خوبش بکنیم یک جا خوب بشه سر جای دیگه خراب میشه یک جا رو اصلا بخوان بکنیم چندین جای دیگه رو میزنیم خراب میکنیم لذا اگر قرار باشه دیدی فرا کل نگر نسبت به انسان داشته باشیم و پیاده بکنیم این موضوع و تحقق این موضوع نیاز داره که ما به هوشی بسیار فراتر از هوش خودمون دسترسی داشته باشیم نیاز هست که به یک منبع هوشمندی اتصال داشته باشیم کمک بگیریم تا بتونیم همچین مساله رو تحقق بدیم چون این دسترسی نبوده در اینجا هم نگاه ها تکبودی شده و تازه همون تکبود هم خورد شده و هی تخصص تخصص تخصص در تخصص هرچی هم خردتر میشه موضوع گیش کننده تر میشه روی یک موضوع میبینید که که یه تخصص مربوط میشه ده نفر ده تا نظر متفاوت میدن تازه در حالی که با آزمایشات و مسئله مختلف سپورت میشه پس اگر اگر این فرض قرار باشه که ما همچین دیدی به انسان داشته باشیم و اون دید رو بهش تحقق بتونیم بدیم این فرض در اون صورت پشتیبانی همچین دیدگاهی باید هوشی باشه به مراتب برتر از هوش ما. که موضوع این دوره، در واقع بررسی همینه که ببینیم همچین هوشی همچین هوشمندی این هوش جمعی رو. ما میتونیم باش در ارتباط قرار بگیریم و در واقع ازش بهره مند بشیم یا نمیتونیم درست شد. پس در واقع، این گروه جنبه یک گروه تحقیقاتی رو پیدا میکنه که قرار مسائلی رو از این زاویه به تست و تحقیق بکشه ببینه آیا میتونه از چنین هوشمندی استفاده بکنه در ارتباط قرار بگیره و یا اصولا همچین چیزی هست یا نیست این خلاصه مطلب در مورد کار تحقیقاتی که میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم. خب در همین ابتدای قضیه یه مسئله پیدا میشه. مثل اینکه شما در جوذراتتون میخوایید که این شاخه شاخه ایست ایرپانی. از همین لازم میشه که به یک تعاریف برسیم که منظور شاخه ایست ایرپانی یعنی چی؟ چیکار میخواد بکنه؟ اصلا خود ایرپان کارش چیه؟ و اینها رو یه شناختی باید داشته باشیم تا دقیقتر بدونیم که چیکار میخوایم بکنیم و این آزمایشاتمون رو چگونه باید سر و سامان بدیم. لذا وارد یه بحث دیگه میشیم که در اونجا بتونیم ابعاد دیگری رو باز کنیم، چند تا موضوع رو بررسی بکنیم و این هوشمندی رو هم در تئوری و در عمل راجبش صحبت کنیم و کار بکنیم امروز به نتیجهی در واقع برسیم خب انسان با دو پله سر و کار داره همباره پله عقل و پله عشق پله عقل در اون ابزارهایی وجود داره که بعضی یعنی از این ابزارها حقیقیست و بعضیش مجازی است. علم و دانش فن و تکنیک راه و روش به عنوان ابزارهای حقیقی و سعی و کوشش، پند و نصیحت، دلیل و برهان حالا سعی و کوشش اونا به عنوان ابزارهای مجازی به کار میرن. روی پله اش شور و شوق، ایثار و فداکاری، مهر و محبت و به هر حال چیز ها رو روی این پله داریم که در واقع هیچ کدوم ابزار نیستن و هیچ کدوم با ملاک عقل قابل سنجش نیستن لذا به طور مستقیم این چیزهایی که روی این پله است مستقیما به درد اینجا نمیخوره اون چیزی که اینجا است به درد اینجا نمیخوره مثلاً با پند و نصیحت نمیشه یکی رو عاشق کرد یا کاری کنیم که دست از عشق بکشه با سعی و کوشش نمیشه به ذوق رسید با سعی و کوشش نمیتونیم الان بگیم که دو خص شعر بگیم درسته؟ و بالعکسش نمیتونیم بگیم که ما میریم رو کره ما فرود میایم صرفا مخاطر اینی که شور و شوق داریم تا نشینیم محاسبات دقیقی انجام ندیم نمیتونیم به صرف این که ما عاشقیم که کره ما بریم بریم اونجا بشینیم باید ای آپولو بسازیم یه کاری بکنیم که فن و تکنیک و علم و دانش و اینا رو میخواد پس مستقیما هیچ کدوم به کار هم نمیخوره ولی به طور غیر مستقیم بله با هم دیگه سر و کار دارن لذا روی این پله گفته میشه پای استدلالیان چوبیم بود بعد پای چوبین سخت بیتمکین بود این موضوع روی این پله است نه روی این پله روی این پله بدون پند و استدلال و دلیل و برهان و اینا که اصلا کاری نمیشه کرد ممکنه بعضی اینا رو ندونن بگن که اینا فرض کنید در اینجا چجوری پای استدلال آن چوبین بود این موضوع رو روی این پله داره عنوان میکنه لذا موضوعی که میمونه دو تا دنیا دنیای ابزار دنیای بی ابزاری دنیای ابزار دنیای بی ابزاری حالا از یه زاویه دیگه که نگاه بکنیم یک پله کمیت رو بررسی میکنه یک پله کیفیت رو خب ما در هر لحظه با این دوتا پله سرکار داریم یا نداریم؟ میتونیم اصلا جدا بشیم از اینا؟ اصلا نمیشه همه کارهای ما، همه فکر ما، همه همه مسائل ما یه بوده کمی داره، یه بوده کیفی داره مثلا فرض کنید که یه کارمند سر کارش حاضر میشه کارتی میزنه، ساعتی میزنه، مشخصه که شهر وظیفه شیه این میشه بده کمیتی ماجران اما آیا دوتا کارمند دوتا کارمند همشون با یک کیفیت حضور دارن خیر یکی رو میگه این کارمند درسوزی یکی رو میگه این ازیرکار در روه خب کیفیت حضور متفاوته صبح از خواب پامشیم پتو رو میزنیم کنار با کیفیت های مختلفی به زندگی نگاه میکنیم یکی میگه وای دوباره باید برم سر کار یکی میگه وای دوباره الان باید پاشم سپونه درست کنم و یکی میگه امروز این همه کار دارم باید برم و به هر حال کیفیتای های متفاوتی برای این بیدار شدن و بر اون حرکت و بر اون حکف فرماست درسته بنابراین ما با دو دنیا سر و کار داریم یک بخش یک دنیا میخواد کمیت وجودی ما رو مورد بررسی قرار بده یک بودی میخواد کیفیت وجودی ما رو مورد بررسی قرار بده درسته؟ اون دنیایی که میخواد دنیای کمیت ما رو تعریف بکنه دنیای عقله اون بخشی که میخواد کیفیت وجودی ما رو برسی کنه دنیای دله به عبارت دنیای عشقه و اینه که میخواد کیفیت وجودی ما رو و هستی رو اصلا به طور کلی تعریف بکنه حالا اینها از هم جدا شدنی نیستند و این دنیای این ماجرا دنیای عرفان، اصطلاحا نامیده میشه دنیای عرفان میخواد چیکار بکنه کیفیت وجود رو تعریف کنه ولی دنیای علم یا دنیای حالا دنیای مختلفی که میخوان این مسائل رو تعریف بکنند کلا دنیای عقل رو تشکیل میدن بنابراین وقتی میگیم که این شاخه شاخه است ارفانی چند تا موضوع فورا در دم مشخص میشه یکی که فن و تکنیک و اینها نداریم فن و تکنیک را و روشونیم دوامی حرفا نداریم ابزار نداریم دو نشون میده که کار کار است کار است، نه کار کمیتی درست شد؟ هیچ کمیتی تو دست ما نیست. هیچ چیزی فیزیکالی تو دستمون نیست. قرار نیست باشه. قراره از راه دور رو کیفیت چی بشه؟ یه جابجایی‌ها انجام میشه که حالا این جا نحوه این جا بجای یا چه گونه گیش فینال می‌دونم در تئوری در عمل با هم صحبت میکنیم خب اگر گفته میشه ما خاک را به نظر کیمیا کنیم خاک چیه؟ انسان کیمیا، هنر ارتقاء انسان یعنی در واقع عرفان، هنر ارتقاء انسان ارتقاء چیش؟ کیفی ارتقاء کیفی انسان بنابراین ما هیچ مداخله کمیتی چیه؟ مداخله کمیتی نداریم هیچ تداخل کمیتی نداریم در کار کسی که با کمیت سر و کار داره ما هیچ دخالتی نداریم و این ارتقا ارتقایست کیپی این دست بردن دست بردن کیپیست نمود کمی نداره نمود کمیتی در واقع توش نیست خب پس تا اینجا متوجه شدیم که میخواییم کاری انجام بدیم این کار از زاویه به خصوصیست که تا امروز شاید تجربهی در موردش نداشته باشیم حالا میایم بحث هوشمندی رو اون حوشمندی حاکم بر جهان هستی رو مورد بررسی قرار میدیم یا اون هوش جمعی رو برای اینکه که این بحث رو دنبال بکنیم یک موضوع دیگه رو بحث میکنیم به نام سکه وجودی سکه وجودی دو تا موضوع رو برامون به بحث میکشونه واقعیت وجودی و حقیقت وجودی یعنی اگر یک وجودی رو به عنوان سکه در نظر بگیریم دو رو داره دیگه این سکه یه طرفش واقعیت ده طرفش حقیقت واقعیت اون چیزی است که واقع شده حادث شده اتفاق افتاده حقیقت ماهیت و کیفیت اون وقوعه پشت پرده اون وقوعه چگونگی اون وقوعه چرایی اون وقوعه و میخواد پشت پرده اون واقعیت رو در واقع راجع به صحبت کنیم حالا با مثالهایی در واقع مسئله روشن میشه اگر که ما تیغه رو داشته باشیم و این تیغه رو به سرعت به حرکت در بیاریم شما چی میبینید؟ شما یه دایره میبینید یا به بارد دیگه اینجا یه استوانه در واقع به وجود میاد چونه زخامت هم داره یه دایره از مقابل میبینیم یک استوبانه از حاشیه میبینیم بعد اگر من سوال کنم این چیزی رو که شما میبینید آیا واقعیت داره یا خیر چه جوابی فرمایید؟ واقعیت نداره؟ واقعیت داره. داره چون که واقع شده حادث شده اتفاق افتاده شما یه دایره دارید میبینید چطوری داد شده شو؟ شما چیکار دارین شما دارید یه دایره می‌بینید اگر بفرمایید بگیم اینا چیه میگه یه دایره رو من اونجا دا دارم می‌بینم یعنی یه چیزی رو منظورتون یه پرفره و چیزی که داره میچرخه رو دارید می‌بینید یه دایره است این این برای شما واقعیت داره اما اگر که بیایم از بعد حقیقت بهش نگاه بکنیم موضوع فرق میکنه خب من میگم این حقیقت هم داره حقیقت میاد میگه که نه این دایره اصلا وجود خارجی نداره پس فرق واقعیت و حقیقت رو اینجا با این ذکر ای مثال داشته باشیم حالا اگر که سوال بکنیم من شما و جهان هستی واقعیت داریم یا نه جواب چیه واقع شدیم حادث شدیم پس واقعیت داریم اما اگر بگیم که آیا ما حقیقت داریم یعنی من شما و جهان هستی آیا حقیقت داریم بررسی باید بکنیم بررسی میکنیم پس این میشه یک موضوعی که چون واقعیت تمام شد اما حقیقت میگه باید بررسی کنیم پس معلومه که براش چیه دردم مسجل نیست که ما هستیم یا نیستیم باید بررسی کنیم خب حالا بیانیم بررسی بکنیم جهان هستی اینه که میشناسیم میگیم ماده انرژی که خب جبدش انرژی ماده هم یک شکلی از انرژی موج متراکم، انرژی متراکم میشه ماده خب، ما حالا بخش ماده رو در نظر بگیریم ماده از چی تشکیل شده؟ اجرام سماوی اونا برحال بخش مادی از مولوکول ها, مولوکول ها چی؟ از اتم یک اتم رو در نظر بگیریم این اتم رو برای اینی که بهتر بتونیم مورد بررسی قرار بدیم به اندازه بزرگ رو در نظر میگیریم که بتونیم روش خلاصه بررسی بکنیم دیگه اگر اونو به اندازه یک زمین فوتبال در نظر بگیریم یک هسته پیدا میکنه کوچکتر از یه توپ فوتبال یه توپ بیسبال. حالا بالاخره یه توپی اون وسط میشه هسته و یک کره عظیم رو ما میتونیم به عنوان این اتم ببینیم یعنی از دور اگر بهش نزدیک بشیم یک کره عظیم رو میبینیم شکلی که ما از این کره عظیم میبینیم ناشی از چیه ناشی از حرکت الکترون ها ابر الکترونی یعنی در واقع این شکلی که داره میبینیم چون در مدارها اربیتال های مختلف دارن اتمات ها میکنن؟ گردش میکنن، حرکت میکنن لذا ما از دور که نگاه بکنیم یه کره عظیم رو میبینیم حالا اگر حرکت الکترون ها رو متوقف کنیم چی میبینیم؟ یعنی <تصفيق> همون کره عظیم حرکت الکترون رو برپرد بتونیم متوقفش کنیم متوقف کنیم چی باقی میمونه؟ <تصفيق> اصلا همچین کره وجود نداشته ما ایمو یک هسته درست یا نه؟ اگر الان در سطح بدن من الکترون ها متوقف بشه از من چی باقی میمونه؟ در سطح بدن من الان حرکت الکترون ها متوقف بشه به اندازه سر سوزن از من باقی میمونه که مجموع هسته های این اتم هاست این درست یا درست نیست؟ خب از اینجا به بعدم اگر ادامه بدیم به هسته برسیم. هسته رو مورد بررسی قرار بدیم پروتون، نوترون اینا در خلاف جهت همدیگه در گردش هستن. یه دیسکی رو تشکیل میدن و این دیسک رو اگر بیام دوباره این حرکت اینا رو هم متوقف کنیم دوباره از اون سر سوزنه چی باقی میمونه؟ دیگه این ذره باید با میکروسکوپ نگاه بکنیم. اون چیزی که باقی میمونه دوباره بیایم و ذرات بنیادی رو زیر نظر بگیریم ذرات و ضد زرات که در مقابل هر ذره زد زرش وجود داره نوترون، نوترینو الکترون، پوزیترون و همین الا آخر که ابتدا و انتهایی نداره در محیطی بیکران افتاده ایم نیست ما را ابتدا و انتها. حالا اینو ادامه بدیم همینطوری حرکت در حرکت در حرکت هر حرکتی یک بخشی رو در نظر ما به تجسم کشونده حالا دلایل متعدد داره کهش فرکانس چشم ما خب لذا ببینید یه نتیجه میتونیم بگیریم که جهان هستی برن این بخش مادیمون که شد چی شد حرکت بخش انرژیمون هم که خودش اصلا موجب و حرکت یعنی در واقع چیزی جز حرکت نداریم ببینید میتونیم این نتیجه رو بگیریم که جهان هستی از حرکت ساخته شده این نتیجه رو میتونیم بگیریم خب. آیا اون نتیجه رو هم میتونیم بگیریم که این حرکت یه ردی به جا میذاره که مثل همینه میتونیم یا نمیتونیم در واقع این حرکت ردی به جا گذاشته حرکت الکترون ها الان یه حجمی رو در نظر شما به تصویر می که شما منو می بینید من شما رو می بینم یعنی در واقع ما احجامی هستیم حجم هایی هستیم که حرکت الکترون ها اصولا حرکت ما شکل داده این هم درسته؟ خب لذا اون چیزی که از حرکت ناشی بشه رد به جا و این ردی که به جا گذاشته میشه داره به چشم ما میاد و ما اونها رو میتونیم نگاه و نظاره بکنیم حالا فرکانس چشمونم هم توی مسئله تأثیری داره بنابراین میخوام بگیم که جهان هستی اون چی دیگه ما میبینیم اون ماده و انرژی که ما میخوام ببینیم حقیقت میخواد یه چیز دیگه بگه واقعیت میگه وجود داره بحثی نیست حقیقت میخواد بگه که مجازی و ناشی از حرکته. خب یعنی در واقع جهان هستی مجازی میباشد. یعنی مثل تصویر در آینه. خب هست یا نیست الکترون و حرکته و همین ماجرا است. هر چی بریم توش هر چی چیز کنیم جز حرکت چیزی پدانی میکنیم. و هر حرکتی رو حرز کنیم یه بخشی از این چیزی که می‌بینیم حرز میشه. درسته؟ حالا بیایم صحبت از کیفیت شد و صحبت از عرفان شد. ببینیم در دنیای کیفیت و در دنیای عرفان به این مسائل چطوری نگاه شده؟ بدون که اون‌ها ابزارهایی داشته باشن. الان خیلی از بحث ما علمی بود تا اینجاش. اما در دنیای عرفان ببینیم به این مسائل چطوری نگاه شده آیا اونها در دنیای کیفیت متوجه این مسائل شدند یا نشدن یعنی کشف رمز بکنیم ببینیم شدن یا نشدن در مورد حرکت صحبت کنیم میگه ما بر در و بام عشق حیران آن بام که نردبان ندارد هر ذره در فقان و اما چه کند زبان ندارد رقص است زبان ذره جز رقص دیگر بیان ندارد رقص است زبان ذره خب یعنی ما اینجا گفتیم حرکت در دنیای عرفان با زبان قشنگ و موزون و همچین زیباتری صحبت شد که زبان ذره رقصه. قبل از اینکه که اربیتالی کشف بشه قبل از اینکه که چیزی در بیاد بیرون اصلا بدونیم حرکت هست نیست به یه شکلی به یک صورتی در دنیای کفیت بدون ابزار گرفته شد که زبان زره رخصه و در واقع همین تحبیر در جهان در دنیای عرفان میشه جهان هستی از خب، ما اینجا گفتیم حرکت در اینجا گفته شد که رقص خب درست یا نه؟ جااصلسی از رقص ساخته شده یا نه؟ خب. در مورد مجاز و مجازی شان الله میگه نقشی و خییای که عالم خوانند. نقشی و خیالی که عالم خوانند، معنی سخن محققان میدانند. جز خیالی چشم تو هرگز نبیند از جهان جز خیالی چشم تو هرگز نبیند در جهان از خیال جمله بگذر تا جهان آیت پدید درست شد مطابقت میکنی یا نه تو در خوابی و این دیدن خیال است هر آنچه ای از آن مثال است به روز حشر چون گردی تو بیدار ببینی که این همه وهم است و پندار ببینید که این همه وهم است و پندار حافظ میگه فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که نظر بر مجاز کرد خب فردا پرده میره کنار یه دفعه زب بلند میکنیم اینا همش در واقع مجاز بود و ما در غرق مجاز بودیم و این مجاز رو حقیقت میپنداشتیم. یعنی فکر میگریم که وجود خارجی داره مولانا میگه علمی که تو را گره گشاید به طلب زان پیش که از تو جان براید به طلب آن نیست که هست مینماید نماید بگذار آن هست که نیست مینماید به طلب مطابقت میکنی یا نمیکنه یه هستی هست یه نیستی هست که خودشو نشون میده یه هستیه که ما نمیبینیمش اینو بزنیم کنار تا اون از خیال جمله بگذر تا جهان آیت تجید یعنی پشت این قضیه یه ماجرای خوابیده اون اصله نه این یکی که ما در واقع دنبالش هستیم کسانی که جذب مجاز میشن اهل مجاز خیا میگه دانیز چه روز تو کردن من زیرا که حرام نیست میخوردن من بر اهل مجاز است به تحقیق حرام اهل مجاز می خوردن اهل راز برگردن من می می خوردن از خوم وعدت الهی خوم معرفتش و خوم آگاهی و ایناش که حالا میایم باش آشنا میشیم درست شد یا نه؟ پس بدون هیچ علمی از روی این یکی پله دسترسی به اطلاعات و آگاهیها ها مویثر بوده میسر شده عقل گوید شجهت حد دست و بیرون راه نیست عشق گوید راه هست و دفته امنبار ها خب حالا کاربورت ها رو یواش یواش متوجه میشیم که منظور چی خب حالا یه بحثی دیگه که اینجا هستیم در هاشیه راجب ارفان داشته باشیم برگردیم سر اصل موضوع بازم گفتیم جهان اصلی از رقص آفریده شده خب برای اینکه رقص داشته باشیم چه چیزی باید باشه که بتونیم رقص داشته باشیم برای اینکه آهنگ داشته باشیم چی میخوایم؟ ساز، احسن، اینم ساز برای اینی که این ساز مورد استفاده قرار بگیره چی میخوایم؟ مطرب مطرب چیه؟ یا چیه؟ یا چیه؟ چه مطربی؟ چه سازی باید بزنه که با آهنگ آن بی نهاید عیزا به رقص در بیاد بیرون؟ حدیث مطرب و میگو و راز در کمتر جو که کس نکشود و نشاید نک به حکمت ما خوب خب مطرب کیه؟ مجمع. بله، حدیث مطرب بالاترین حدیثی است که ما میتونیم مورد شناسایی قرار بدیم. سازی بزن که با آن رتل بله. خب پس؟ در دنیا عرفان اونجا که صحبت رقص و اینها میشه با این رقص ها و با این مدرب ها و با این ساسا یک تفاوت عمده ای داره که در دنیای عامه فکر میکنن که بله اینا عجب آدم های بحالی هستند و دنبال مدرب و می و ساقی و ساقر و این حرف هستن و لوی جوب آب هم که میگردن و دیگه همه سروسات کامل و کافیه در حالی که موضوعات داره حرف از چه مسائلی میزنه و چه آگاهی‌هایی رو در واقع میاره آشکار میکنه و باز میکنه خب مطرب ساز آهنگ رقص جهان هستی از هوشمندی ساخته شده از قبلش هم میتونیم بگیم جهان هستی خداست از خداوندی یوسف سبب ح الله مافل سواوات و مافل است در رو او شناورند آن چه که هستند. جهان هستی از هوشمندی ساخته شده مییم به نجیح می رسیم. جهان هستی از قوانین ساخته شده، به عبارت اراده خداوند همین قوانینه. میدان ها هستند، میدان گرانشی مدان حسه ضعیب میدان الکترومنای میدان حسه میدان قوی و الخر و قوانین که میگه، جهان هستی چگونه باشه جهان هستی از اعداد ساخته شده تمام اعداد که هستند اعداد یه مقدار این وران بر بشن، ممکنه بود و نبود ما ممکنه نه خصوصا اعداد ثابتی میگیم ثابت سرعت نور ثابت آواغادو ثابت پلانک ثابت پی ثابت نپریان ثابت های مختلف و خیلی از اعداد این وران بر بشه یکیش یک این وران بر بشه مثلا میگیم فاصله زمین تا خورشید اینقدر خب اگه این فاصله تغییر کنه چی میشه؟ اگه سرعت نور تغییر کنه چی میشه؟ خب یعنی یه عدد این ور اون بر بود و نبود ما چی میشه؟ رقم زده میشه پس به عبارتی جهان هستی از اعداد ساخته شده ما انون راجب چیزی انون صحبت نکردیم تا اینجا بحث ما بحث است که راجب هوشمندی داریم صحبت میکنیم. حالا اجازه بدین. بله. از کنم خدمت یه سوالی مطرح میشه و اونم اینه که چه عاملی به این همه رقص به بی‌نهایت رقص ذرات عالم هستی معنا داده؟ چه عاملی باید باشه تا این همه ما چیز رو داشته باشیم در جهان هستی این همه حرکت رو چه چیزی بهش جهت داده خوب باید چه چیزی باشه که این همه حرکت جهت پیدا کرده باید یک گوشمندی باشه دیگه یه هوشی میخواد سوار بر عالم هستی باشه که بتونه این همه حرکت رو چیکار کنه؟ هدایت بکنه قبول یا قبول نیست. باید یه هوشمندی باشه. یه چیزی سوار باشه که این همه حرکت و این همه رقص و در رقص و بتونه چیکار بکنه؟ هدایت بکنه. پس جهان هستی در اصل از هوشمندی ساخته شده است. درسته یا درست نیست؟ خب این همون هوش جمعی، این همون شعور الهی آگاهی میتونیم اسمای دیگه بذاریم روش این هوشمندی شعور الهی آگاهی اسمشو بذاریم اراده الهی به عبارتی میتونه باشه چون محصول یک اراده است اونجا تو این آگاهیه مون نامعنوسه خب بله این دغمه اراده الهی پیدا میکنه گفتیم قوانین الان تو بحث قبلی گفتیم اراده الهی که به جهان هستی چی شده؟ اعمال شده حالا بعد هم میبینیم درخت نمیوفتم اگه به اراده او اراده او چیه؟ قانون قوانین عالم هستی اون برگ درخت تابع قانونه یه مقامت اونو نگه داشته به درق یه نیروی باد یه نیروی جازبه هست. به مرز اینکه که بردار منتج اینها به سمت بیشتر بشه اون درخت کنده میشه این اراده الهیست درسته یا نه؟ خب حالا اون چیزی رو که ما الان در تئوری و در بحث بهش رسیدیم که جهان هستی از هوشمندی ساخته شده این هوش این شعور الهی یا هوش جمعی هوش جمعی هوش هستی هوش هر چی که اسمش رو بخوام بذاریم این موضوعی رو که اینجا در تئوری بهش رسیدیم میخوایم ببینیم که در عمل هم وجود داره یا وجود نداره درست شد؟ یعنی صورت مثلمون یا اون دستور کار تحقیقاتمون چیه؟ مشخصه؟ آیا هوشمندی؟ که اینجا در تئوری راجبش صحبت کردیم برامون اثبات شد آیا در عمل هم وجود داره یا وجود نداره خب حالا بیم فرض کنیم که این مسئله وجود داره چرا میخوایم ازش بهره مند بشیم چرا می‌خوایم اصلا از دنیای عرفان استفاده بکنیم چرا باید استفاده بکنیم اینم باز یه مطلب دیگه است ممکنه کسانی فکر بکنن که لازم نیست دنیا ارفان و بعد بعضیا میگن شما از ارفان خوشتون میاد یا بدتون میاد اون میگه نه من از ارفان بعدم میاد اون میگه نه من خوشم میاد اصلا مگه اینجوری موضوع مگر ما از بوده کپی خودمون میتونستیم جدا بشیم یا میتونیم جدا بشیم که بگیم ما خوشمون میاد یا بعدمون میاد ما فقط در یک سوی تفاهم تاریخی قرار گرفتیم به ما مفاهیم رو انتقال ندادن ما فکر کردیم که بوده کیفی که بر همه کارهای ما حاکمه ما فقط تعریف براش نداشتیم و در اینجا یکی از اهداف اینه که باید با دنیای عرفان آشنا بشیم به خاطر اینه که باید کنترل کیفی رو وارد زندگیمون بکنیم اصلا ردفور نداره راه گریز نداره ممکنه اسمشو عوض کنیم ممکنه این ورش کنیم ممکنه اورش ورش بکنیم ولی امکان فرار نداریم حالا اینو به شکلهای مختلفی بهش میرسیم پس ما داریم وارد یک بازی میشیم یعنی موضوع این دوره بازیه در واقع وارد یک بازی میشیم که در ضمن این بازی ما پی به این هوش جمعی میبریم پی میبریم که چرا باید دنبال ارفان یعنی شناخت کیفی وجود به هستی دیدید وقتی که علم میخواد راجب هستی صحبت کنه خب بحث کمی باشه راجب جهان هستی چی میگه وقتی بوده کیفی باشه بود کیفی میاد میگه اصلا چگونه هست وجود داره نداره و خیلی مسائل دیگه این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هستن اصلا بود کمی و کفی لازم و ملزوم همدیگه مثلا فرض کنید همه علوم بر پایه الهام بنا گذاشته شدن الهام چیه؟ اون جرقه ذهن جرقه کمی نیست که مربوط به چیه؟ معرض به دنیای کیفیت و این جرقه های ذهنی است که باعث شده علوم پای گذاری بشن. بدون الهام علوم وجود نداشتند. بنابراین امروز ایجاد یک آشتی بکنیم بین بخش کفیه وجودمون و بخش کمی وجودمون. این برای ما سلامت میاره، سلامتی میاره. برای ما خیلی چیزها میاره که حالا یواش یواش با اون نزدیک میشیم خب علل دیگه رو مورد بررسی قرار بدیم یکی از این علتاش شناخت گنج وجودی یا قابلیت وجودی ما چقدر قابلیت داریم به عنوان انسان؟ بله چقدر قابلیت داریم؟ خب هم خیلی هم هیچی هر دوش. تجربه همین جا به ما نشون میده یه جلسه دیگه ما به شما میگیم یه سوگندنامه بنویسین این سوگندنامه میدیم خدمتتون سوگندنامه رو می فقط از یک منزله یه امضایی این بر قضیه این امضا رو من میکنم که در واقع معنیش اینه که من یه مطالبی رو به سم و نظر شما رسوندم شما هم یه امضا میکنید که من گرفتم و استفاده مثبت میخوام بکنم در جهت ارتقای روی جمعی و آگاهی حرفا به مرز اینکه که شما این امضا رو میکنید یه لایه محافظ میگیرید یعنی به فاصله ثانیه است این تشریفات چیزم تشریفات دیگه این سوگننامه تشریفاته یعنی شما به فاصله ثانیه ای از این ور به اون ور قابلیت استفاده از این هوشمندی تو دست شما قرار میگیره خب فرض کنیم این کار شد در این صورت چه چیزی رو چه نتیجه رو ما میگیریم نتیجه میگیریم که ما میتونستیم خیلی قابلیت بالاتری داشته باشیم چرا این کار رو ده سال پیش نکردیم چرا پنج سال پیش نکردیم چرا بیس سال پیش نکردیم چرا نسله گذشته نکرده خب ما قابلیت داریم این مسائل در مورد ما تعریف شده هست فقط را اندازی میخواد فقط باید اتصال ایجاد میشده لذا این تجارب نشون میده که توز چشم خیش پنهانی اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آیت پدید من در همین جا در همون تکمیل تعریف ارفان یه مطلب دیگم بگم که اینجا توی این بحث سوگننام اونا که پیش اومد کمکمون میکنه ارفان دو بخش میشه اون وقت ارفان کمال ارفان قدرت ارفان کمال میخواد بیاد به ما بگه از کجا اومدیم چرا اومدیم کجا میخوایم بریم؟ فلسفه خلقت چی؟ اصلا چرا خلقت صورت گرفته؟ کار علمیش که ارپان قدرت میخواد نحوه نهوه برطری فردی رو نسبت به دیگری بیاد به او تفیز بکنه این میخواد کمال و رای کمال و اتصال کمال و اینها رو در واقع به فرد تفیز کنه و تو مسئله قدرت میخواد نحوه ایجاد برتری فردی رو به فرد دیگری یا افراد دیگری تعریف کنیم. مثلا چگونه در دیگران نفوذ کنیم چگونه فکر دیگران رو بخونیم، چگونه اعمال اراده کنیم، چگونه مسک کنیم؟ چگونه فردا رو ببینیم؟ خب ما اگر فردا رو ببینیم برتری ایجاد میشه؟ بله میشه قدرت، اگر بتونیم فکر یکی رو بخونیم خب جلو میوپتیم برتری ایجاد میشه درسته لذا قدرت با کمال چقدر فرق داره خیلی ممکنه کسی فردا رو ببینه ولی اگر ازش بپرسی از کجا اومدیم ندونه کجا میریم چرا اومدیم چی شده اصلا موضوع دانش کمال رو چیزی ندونه ولی فردا رو بتونه ببینه درسته یا نه خب این دوتا مقوله کاملا مجزاست حالا اطلاعات این قضیه رو یه جا ساپورت میکنه اطلاعات این موضوع رو یه کانال دیگه ای پشتیبانی میکنه اینو یه شبکه اینو یه شبکه که حالا اینها رو باز هم آشنا میشیم اون چیزی که ما دنبال میکنیم عرفان کمال هست و به افراد میگیم که این برطری ها مسئله مشکلاتش ریشهش از کده چطوری چگونه و اصولا نشون میدیم که ما باید دنبال کدوم بخش باشیم حالا لذا اون بحث سوگنامه و همین میخواد بگه که ما دنبال بحث موضوع کمالی ما تفیم کردیم که چی میخوایم و داریم چیکار میکنیم اگه اشتباه اومدی خب همین الان بدون که اشتباه اومد. و موضوع اینه اما به فاصله ثانیه یه فردی که تو خیابون داره رد میشه این اطلاعاتم بهش بدیم کاری نمیتونه بکنه ولی شما متوجه میشین که میتونید از یک گوشمندی برتری استفاده بکنید این موضوع مثل از پس تو چشم خیش پنهانی اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آیت پدید اگر پیدا شوی درسته؟ حالا سر این اگره هست موضوع دیگه شناخت عملی حوشمندی هم که دیدیم که شناخت عملی یعنی در عمل ما ببینیم چیزی وجود داره یا وجود نداره این هم شناخت عملی هوش جمعی موضوع دیگه تحقق عبادت عملی عبادت چند جور داریم عبادت نظری عبادت عملی عبادت برای اینکه مفهومش رو بهتر بیان کنیم اجازه بدین با رفاقت رفاقت رو تعریف کنیم رفاقت چند جور داریم رفاقت نظری رفاقت عملی رفاقت نظری چیه زبونبازی، بازی زبونی عباراتی رد و بدل میشه که تبادل این عبارات در واقع چیز جز زبونبازی بازی نیست چاکرم کوچیکم عبدم عبیرم غلامم خاک زیر پا هستم درد و بلات تو سرم و از اینجور جور مسائل اما به معنی که شما پاتون از گلیم دراز بکنید همونه که میگه خاکی زیر پاتم با ساتور میزنه قلم فامونو خورد میکنه خب پس اینها جنبه تعارف داره اما چه موقع بفهمیم که یک رفیق در عمل رفیقه چه موقع؟ در موقع گرفتاری جایی که گیر هستیم اون سرکلش بدا میشه بقیه همه گم میشن همه براری میشن متواری میشن ولی بینید که یه نفر بله اونجا تو صحنه مونده بقیه همین میگن کاش دیروز گفته بودی ای کاش 5 دقیقه پنی دقیقه زودتر گفته بودی خب مسئله حل بود و به این صورت در مورد عبادت هم همینه یه عبادت نظری چیزی جز زبون بازی نیست سبحان الله الحمدلله درسته یا نه زبون بازی است مؤهنه میخواد میگیم اما اگر قرار باشه از آلم بالا به ما نگاه بشه ببینن که رو ما میتونن حساب کنن یا نمیتونن حساب کنن چه فاکتوری باید در بین باشه؟ بله؟ فاکتور هی علا خیر العمل این فاکتوره که نشون میده اونا زبون بازی بود یا نه واقعیت داشت بنابراین در عمل در جریان هی خیرالعمل خیر العمل هست که معلوم میشه که اون مسائل ما به درد بخور بود یا به درد بخور نبود حالا شما در رابطه با اون رفیقتون اگر در عمل همراه شما نباشه زبون بازیاشم به دردتون میخوره؟ اگر در جریان عمل با شما نباشه زبونبازی هاشم بگه من خاک زیر پاتم قلعه دم بدم، کچه کدم، نمیدونم اینا به چه دردتون میخوره؟ لذا اگر کسی حی الاخر العمل رو نداشته باشه بقیاشم هم همه چیه؟ زبون بازیه بقیاشم به درد نمیخوره لذا مهر تایید این صحبت ها اینجاست یعنی اینجاست که اگر وجود داشت اونم حی الاخر العمل که اگه وجود داشت هم به درد میخوره اگه نبود که زبون بازی کاری نداره منم صبح تا شب میگم الحمدلله الحمدلله الحمدلله حالا توی این رابطه اگه قرار باشیم ما در خدمت باشیم و در یه خیر عمل باشیم باید به کی خدمت کنیم؟ خودش که بی نیازه بی نیاز مطلقه دیگه حقیقت مطلق بی مطلق یه حقیقت بیشتر نداریم اون حقیقتو زیر اون مجاز غیر خدا چیزی نیست غیر خدا در دو جهان هیچ نیست هیچ مگو غیر که آن هیچ نیست این کمر هستی مهم را چون به گشایی به میان هیچ نیست اینم دوباره همون بحث مجاز رو این کمر هستی مهم را چون به گشایی به میان هیچ نیست خب حالا پس یه حقیقت مطلق داریم اوست غیر از او همه مجاز شی هالک الا وچو فقط در واقع یک حقیقت مطلق داریم و بقیه مجازه حالا عرفا از این زاویه ها چجوری رسیدن و این ماجره ها رو دیدن بمانند خب خلاصه اگر قرار باشه هی آخری لمل باشه چی باید بشه؟ چی کار باید بکنیم؟ اون خودش بی نیازه باید چی کار کنیم؟ لذا در دنیا ارفان میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست چون مورد تعییده یعنی اگر قرار باشه یه کسی کارش درسته درست مورد تایید چیه باید بیایم در عمل ببینیم غیر از حرف و این ماجراها چه کار عملی داره اونجا بگیم که بله این مورد تایید میخوره یا نه نمیخوره امکانی که ما در رابطه با هوشمندی پیدا میکنیم اون چیزی رو که پیدا میکنیم به ما این قابلیت رو میده که بتونیم این مسئله رو تحقق ببخشیم در زمینه ارتقاء کیفیه انسان حرکت بکنیم در زمینه خدمت به انسان حرکت بکنیم این قابلیت رو به ما میده دیروز ممکن بود ما بحانه داشته باشیم بگیم نمیتونیم امروز نمیتونیم بگیم که نمیتونیم چون قابلیتشو در اختیارمون گذاشته و برامون ثابت میشه که نهبابا میتونیم یک گره های رو باز کنیم دیروز عذر موجه ممکن داشته باشیم امروز نداریم چون میشه به نفع اون حرکت هایی رو انجام داد حالا فرزینا اینه که ما دسترسی پیدا کردیم ببینیم که برای دسترسی پیدا کردیم خب خیلی موضوع تفاوت پیدا میکنیم مسئله دیگه راهایی از زندان خیشتن اگر در خیشتنگردی گرفتار هجاب تو شود عالم به یک بار انسان یک عادت ذهنی داره این عادت ذهنیش باعث شده او در خودش گرفتار باقی بمونه این عادت اینه که دوست داره برای همه از مشکلش بگه بگه بگه بگه بگه درد من، مشکل من، بیپوله من، مسئله من، من من من, من. ولی اگر دیگران میخوان مشکلشون رو بگییم که از مشکل داره میگه اون مشکل خودشه. خب در دنیا اینطوریه مشکل خودشه، مشکل خودته. ولی دوست داریم بگیم که مسئله من مشکل من صبح تا شب. دنبال یک گوش میگردیم که بتونیم بگیریمش و بگیم مشکل من درد من بیپولی من مسئله من مسئله من م مس... همطوری بگیم. ولی در مورد دیگران اون مسئله مسئله خودشه. خب. ما در یک سیکل معیوب در درون خودمون گرفتار شدیم این سیکل معیوب در جریانه و یک جایی باید این سیکل معیوب چی بشه؟ از بمره لذا این قابلیت به ما کمک میکنه تا از خودمون بیرون بیایم و حالا به خاطر اون بحث عبادت عملیه و اینا که گفتیم کمک میکنه که این سیکل معیوب رو داغونش کنیم بیاییم بگیم که چه کاری برای شما میتونم انجام بدم چه کاری برای شما میتونم انجام بدم چون حالا میتونیم قبلا ممکن بود بگیم نمیتونیم بنابراین این ما رو از اون سیکل معیوب نجات میده و بعد از اینکه ما تجربه کردیم میایم میبینیم که خارج از قلعه وجودی ما هم فضای دلنشینی وجود داره خارج از این قلعه وجودی جایی وجود داره که ما خوب تجربهش نکرده بودیم جایی بسیار فره است. اگر تجربهش کنیم دیگه حاضر نیستیم برگردیم تو اون زندان وجودی دیگه بر نمیگردیم هر کاری بکنن فقط کافیه که تجربهش بکنیم بعد از اینه که تجربه کردیم دیگه حاضر نیستیم که برگردیم خب حالا مسئله دیگه هم وجود داره که من اینجا درز میگیرم تو همین رابطه سخن رو کوتاه میکنم میریم راجب اتصال صحبت کنیم خب بود کیفی پس میخواد که قضایای دیگری رو برای ما روشن بکنه که تو بود کمی نیست گفتیم مثال زدی مثلا پس کنید در جریان عبادت که در همه ی دنیا وجود داره یه جایی برزن به عنوان مثال نماز ما بگیم که خب یه کمیت داره درسته یه کمیت داره جهت و غیره با اینها و همه اونها رو ما رعایت کردیم کمیت برقراره اما آیا همه کیفیت ها هم یک سانه؟ هر کشی با یه کیفیتی داخل این قضیه میاد کیفیت اصلیش در عقم مستلات مقیم شدن مقیم شدن، آیا مقیم شدن با خواندن یکسانه یکسان نیست. اون یکیویده این یک ماجرای دیگری است، مقیم شدن، بحث مقیم سرکوی او شدن یعنی چنگ انداختن به یه چیزی یعنی یه دستآویزی پیدا کردن یعنی اتصالی پیدا کردن، یه چیزی تو دل خودش داره که در حالت قبلی اون مسئله وجود نداره بنابراین در دنیای کیفیت در دنیای عرفان یک موضوع بسیار حائز اهمیته یک موضوع هست یک مرتبط شدن یه متصل شدن یه مقیم شدن یه چیزی وجود داره که دیگه کمی نیست خوندن میگه خوندم ولی متصل شدن مقیم شدن یه ماجرای چیه؟ ماجرای دیگری داره لذا وقتی که ما میگیم این کار قراره به صورت کیفی انجام بشه یعنی ایشون متصل بشه یه ارتقا پیدا کنه مفهومش اینه حالا ایشون یا هر کسی دیگری منظور یک چیزی است غیر کمیتی و در جریان اتصالات و ارتباطات که یک ارتقاعات کیفی ایجاد میشه درسته؟ پس دنیای کیفی وابسته به یک ماجراهایی هایی اینجوری این چنین لذا بیایم انواع ارتباط یا اتصال رو تعریف کنیم فردی جمعی ارتباط یا اتصال فردی رو تعریف بکنیم ابتدا خب اگر قرار باشه که ما در یک ارتباطی قرار بگیریم ارتباط ماورایی تابع چه قانونی است ببینید گفتیم قانون تابع قانون قانون فستقیم الهی قانون یا نستعین این پیمان پیمان یا پیمانی که می‌بندیم در واقع هم قانون و اگر بخواهیم کاری داشته باشیم حالا من اینجا از زوایای مختلف صحبت می‌کنم ارتباطات شما از زاویه آکادمیک مطرح بکنیم میتونیم با زبان متون مذهبی مطرح بکنیم لطفش یکیش فرقی نمی‌کنه منتها چون عمدتا دوستان عزیزمون که این کلاس ها تشریف میارند در وهله اول میخوان انطباق این قضایه رو با متون مذهبی بدونند. یعنی این یک مطلبی داریم؟ درست میگم یا نه؟ در وهله اول میخوان انتباقات رو با متون مذهبی بحث آکادمیک زیاد مدن نظرشون نیست ارتباطات زبان آکادمیک داره زبانی هم داره که متون مذهبی هم داره از هر دین و مذهبی نگاه بکنیم مطلب یکیست همه اینها هم قراره که یک حقیقت و یک مطلب رو میخوان بگن جنگ هفتاد و دو ملت همه را عوض بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن همه اینا قراره که در نهایت یک حرف رو بزنن خب این لذا قانون رابطه انسان خدا اگر قرار باشه ما ارتباط داشته باشیم باید با کی ارتباط داشته باشیم با خدا یا کن قانون یا ما اصل قانون اساسی است اونچه که در متون مذهبی میخونیم قانون اساسی است هیچ تبرسری نمیتونه بیاد خود قانون اساسی رو چیکارش بکنه نقضش بکنه لذا فاستقیم الای مستقیم به سمت اون نگاه بکنیم بکنید دستور آیه قرآن بنابراین این قانون اما گفته که من جواب میدم نه مستقیم گفته به من مستقیم نگاه کنید اما من جواب میدم نه مستقیم یعنی من نازل نمیشم من جواب شما رو میدم با چی؟ با ملک وحی مثلا ملک وحی؟ آملی که آگاهی رو جریان میده در جهان هستی عاملی که هوشمندی رو جاری میکنه در جهان هستی لذا این طرف قضیه با کارگزاران ملک وعی هرچه هست هوشمندی جبرائیله روح نمیدونم هرچه که اسمشو میخوایم بذاریم چون در همه مذاهب این بخش مشترکه برای اینکه دعوا مرافع نشه این بگه اینو بذاریم در واقع شبکه شعور کیهانی عامل جاری کننده آگاهی در سطح هستی است آملیست که شعور و آگاهی رو در سطح جهان هستی چیکار میکنه؟ توضیح میکنه پس ما میخواییم او ارجاع میکنه خب؟ اگر ما الهام بگیریم از کی میگیریم؟ اگر آگاهی بگیریم الهامی بگیریم از کجا میگیریم؟ درسته؟ خب اینو میگیریم اما توی این رابطه آیا هر کسی نگاه بکنه بگه خدا برم میگن بله چی میخوای بفرما بگیر؟ اینجوریه؟ این, جوریه؟ این توری نیست و سر راه این قضیه ما یک مقاومت R داریم. خب، یه مقاومت داریم. بگه خدا بگه بله. این مقاومت R وجود داره و بایستی خنثا بشه. ببینید یکی میگه خدا انتظارم داره، همین الان بگم بله. یکی میگه خدا می‌خواد سینه‌شو در واقع جرواجر جر بکنه. جبتش ادعونی از تجبلکم جبتش ادونی است خواستن اما دو تا کیفیت جدا داری یا نه عدالت چی حکم میکنه ادالت حکم میکنه این کیفیت با اون کیفیت یکسان باشه خب این بگن خدا بگن بله اونم که میگه خدا بگن بله خوب این بی عدالتی نمیشه لذا در ارتباط فردی یک مقاومتی رو اینجا گذاشتن برای این که پاسخ گرفته بشه دو تا فاکتور حاکمه هر کدومشون یا دوتاشون. یکی اشتیاق یکی مستر بودنه حالا هر کدومش یا با همش یکی اشتیاق حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت تایر تا فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. اتصالش که حافظ برقرار شد بهش گفتند طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود علکی که ندادن که هممون میخوایم بشیم حافظ ولی طایر فکرمون به دام اشتیاق نمیوپته که بتونه اون حدی باشه که این مقامت خونسا کنه یا مسترودن. مستر بودن امن یجیب المستر ازاده و یک مستر چیه درمانده خب رو کره زمین چه تدار درمانده داریم؟ هفت میلیارد هفت میلیارد درمانده داریم یعنی هر کی بینید آقا من درماندم تو اونم میگه همه درمانده خب پس چرا جواب نمیگیرن؟ پس معنی مستر شدن صرفا این درمانده نیست است که از همه امکانات زمینی بریده این؟ شرط سختیه. ذهن انسان اجازه نمیده که او از همه مسائل زمینی ببره. ببره اون اتصالش برقرار میشه. افراد میرن به یه تنه درخت یه نخی می‌بندن. خب یک معجزاتی رخ میده. نمیتونیم منکر بشیم. دار مراد شما شنیدین. چه عاملی باعث میشه که این کار نشد این شفافران اینا انجام شد چه عاملی استرار مستر بودن کیست که به استرار رسیده پاسخ میده خب بوست اما اون کسی که نتیجه میگیره کسیست که دیگه امیدی روی چیز نداره افراد میگن ما درمانده این خب حالا مثلا فرزن در بیمارستان میبینید که بیماری داره مرتبم زگداش امانیوزبول ها داره میخونه بعد همینه که اینم میخونه بعد داره فکر میکنه که زنگ بزنم به فلان کس ببینم که مثلا اگر فلان متخصص درشم کار میکنه اونم داره میگه اگر فلان متخصص همینو ببینه را امید هست یا نه داره فکر میکنه که اگه ببریمش فلان جا هم یعنی این هنوز امید داره هنوز به این و اینجا و اونجا و اونجا چیه امید داره این مستر شدن اتفاق نمیفته. این راه میلیون نفر یه نفر نتیجه میگیره اگر بگیره توجه فرمودین به خاطر اینه که حد نصاب رو نمیتونیم ایجاد کنیم به دلیل اینکه اون انگیزه رو ایجاد نکردیم مستر بودنشم که اصلا با عادت ذهنی ما جور در نمیاد یعنی اصلا نمیتونیم یه لرزه فکر کنیم که ما از همه چیز قطع امید کردیم هنوز توانایی های خودمون هنوز ملاک عملمونه خب مشکل میلیونها ها نفر یک نفر اگر ماجرای جرای عضونی از استجب رو بتونه به جا بیار. حالا تو تصورات عامه این خیال میکنن تا بگن خدا باید بگن بله بعد بینن پاسخ نمیاد با خدا دوچار تزاد هستن چون این قوانین رو نمیدونن چون قانون رو نمیدونن توقع دارن تا گفتن خدا اونم بگه بله بعد هم که بله مشکل حل و فرست شد و نمیدونم اتفاقا افتاد نمیشه این قضایه رو بایستی بهش اشراب پیدا بکنیم تا دوچار تزاد نشیم حالا میاییم. میریم ارتباط جمعی رو مورد بررسی قرار میدیم یا یکیش دوتاش باشه که دیگه خیلی عالی. ولی یکیش یکیش نه نه نه نه نه, نه. یا این یا اون یا هر دوتا انجام نمیشه قطعا بدونید که اون حد نسابه رو نه این داره نه اون داره مطمئن باشین که هیچ کدومش نداره مونتاق ما فکر میکنیم که خیلی هنر به دادیم که این درجه استقرار رو داریم اعمال میکنیم ولی اگه برگردید نگاه بکنید میبینید نه ما هنوز یه جایی زمینی امید داریم هنوز یه جاهایی رو در واقع روش حساب میکنیم خب میاد بحث ارتباط جمعی که ما با سر کار داریم ارتباط جمعی سه تا عضو داره من تو او من تو او میشیم چی ما او شبکه هوش جمعی این میشه حلقه حالا اسمی که میگیم حلقه وحدت حلقه هوش جمعی حلقه اعتصمو بهبل الله جميعا بلا تفراق به قبل الله حالا می ببینیم که مثلا یه آیه مثل این آیا شعاره یا نه خواسته یک اتصالی رو به ما چیکار بکنه یادآوری بکنه دقت می حالا ببینید چند اسم پیدا میشه از هر زاویه بخوایم حبل الله حلقه هوش جمعی خب حالا همینطور مطالب مختلف میتونه باشه اعضاء من فردیش که با شبکه هوش جمعی خودش در اتصاله وقتی در اتصاله اعتبار داره اعتبار داره یعنی روزی آسمانی داره روزی رو بذارین تعریف بکنیم چون باش کار داریم خب روزی روزی زمینی روزی آسمانی روزی زمینی خب همین قوت روزانهمون بالاخره اینجا اونجا به دست میاد تابع قانونه لیسل للانسان الا ما سعا این یکی از اصول قانون اساسیه درست شد یا نه وقتی میگه لیسه للانسان الا ما سعا یعنی چی؟ یعنی نیست برای شما مگر اینکه اون چیزی که برای سعی و تلاش میکنی تموم شد دیگه تبصره و نمیدونم چی و فلانی حرف نداره این میشه کار زمینی قانون زمینی لذا هیچ کدومون تو خونه بگیم اگه خدا یک نون سنگک از اینجا بنداز پایین. کسی این کارو رو میکنه؟ باید اگه نون سنگک میخوایم پاشیم لباس بپوشیم قدم رنجه کنیم حالا پولیشو به دست آورده باشیم بریم باشیم تو سب و بعد نون بگیریم بیایم درسته؟ تابع قانون کار زمینی قانون زمینی از پیامبر صلی الله علیه والی و بعد و بعد و بعد شما دیدین که هر جا کار زمینی بوده پا شدن حرکت کردن تو جنگ شرکت کردن زخمی شدن شکست خوردن پیروز شدن چیکار کردند؟ ولی و جاه دو پی سبیل الله در راه خدا هم حتی میگه جهد کنین تلاش کنین نمیگه راه من لازم نیست جهد کنی میگه حتی اگه این کارم بکنی باید جهد و تلاش بکنی لذا کار زمینی سعی و کوشش و جهده. بعد تازه میگه که اون چ که به در آوردی من طیبات از بهترینش انفاق کن شکافا رو پر کن و آ تو زکات ذکات بده. ذکات اون چی که ما از هستی گرفتیم حالا میخوایم باید براش جبران کنیم. خوش علم، مال، فرزند سالمه، تن سالمه، اینه، اینه، اونه، اونه، هستی هست چه به ما داده ما هم یه چیزی به هستی برگردونیم یه طرفه ای نگیم بده، بده،, بده، بده، بده، بده، بده ما هم اونور این سیکلو به گردش در بیاریم زکات، خب، زکات علم و دانه شد،, شد، تن سالم و همه این چیزا بعد میگه که خمسش هم بدیم انما غنمتم منشين فن الله اخمسو و للرسو ولذ یتاما و المساکین هر چیز کردین یک پنجمش هم مال خدا و رسول یتاما یتیم ها و مسکین هاست سهم اونارا چرا کرده گذاشته کنار که یتیم و مسکین و گدا و همین حرفا که تو کوچه واسادن نباید اونجا وایسن سهمشون رو ما باید بدیم که تو کوچه وای نرسن خب والا اینم که یک دادی بعد میگه همینا رو که دادی یک قرض الحسنم برای من در نظر بگیریم یک وام هم به خود من بدیم یک قرض به من بدیم درسته یا نه خو همشیه همش که ما بریم کار کنیم بریم و بدیم, بدیم, بدیم بدیم بدیم بدیم بعد روز آخرم به خودشم یک قرض الحسنم به خودشم بدیم درسته یا نه این کار زمینی روزی زمینی است ماجرای روزی زمینی اما روزی آسمانی میگه یرزق به غیر حساب من میدم بی حساب از گنجینه بی پایان یرزق و به غیر حساب حالا اینها همشون مایه های سوی تفاهم هایی شدن که اینا رو چون از اون میگیم لسل انسان لا و از این ور میگیم یرزق به غیر حساب این چیه؟ اون چیه؟ بعدم حالا صحبته میشه که او داده او کرده او... خب بنابراین این مسئله آسمانی به غیر حساب بینهایت گنجینه پایان ناپذیر او که همون آگاهی هاست گنج واقعه چیه آگاهی است خب حالا کسی که خودش قبلا متصل شده اتصالی داره با اون هوشمندیه روزی آسمانی داره و برای او تکلیف شده م ما رزق ناهم از اون چی که روزی داری انفاق کنی حالا این روزی آس که جای خودش داره روزی آسمانیش رو میتونه انفاق کنه میتونه به کسی بده میتونه نده شما از هفته دیگه میتونید کسی رو دست کسی رو بگیرید میتونید نگیرید روزی خودتونه روزی آسمانی خودتونه میتونید فقط خودتون استفاده بکنید میتونید چیکار بکنید انفاق کنید دستی هم بگیرید که دست, دست خودتونم یه ادهی گرفتن خیلی از دوستان این تجربه رو دارن که تو دستشونو دستشون رو گرفتن خب لذا از این اعتبار از این کارت اعتباری میتونید چیکار بکنیم ایجاد ارتباطی بکنیم قانون کلیش وقت اینطوری میشه قانون کلیش اینطوری میشه که ما در واقع خب اینم آیه هست که سه تا بشین چهارمیش منم چهار تا بشین پنجومیش منم شش تا بشین بعدیش منم خلاصه هرچی بشین بعدیش منم نه اینه که تو خیابون دست همو بگیریم خیلی ها تو خیابون دست همون میگیرن ولی چون روزی آسمانی ندارند یعنی یکی از اون دو نفر روزی آسمانی نداره خب از اون دو نفر لاقل باید یکیشون روزی آسمانی داشت بشه دست همون میگیرن ولی اتفاقی این اتفاق نمیفته و در اون حلقه چیزی جاری نمیشه اما حالا شما میتونید امتحان بکنید دیگه شما امتحان میکنید ببینید که نه پاتونو تونو بذارید جلو اتفاق میفته یه چیزایی اتفاق میفته پس این قانون کلی و در اینجا این حلقه ما میتونیم ازش شکار کنیم در این جهت استفاده بکنیم حالا من همه مطالبو میگم اگر چیده کموکست بود بعد با هم باز صحبت میکنیم من یکی دو مطلبو مطلب بگم خب شرط استفاده از این حلقه این حلقه نه به اشتیاق احتیاج داره نه به استرار و مستر بودن نیاز داره نه به ایمان احتیاج داره درست شد یا نه؟ هیچ چیزی نمیخواد تنها چیزی که میخواد فرد بیطرف شاهد شاهد بشه اینجا بگه من دستان میزنم اینجا اینطوری نگاه میکنم اگه بود میگم هست اگه نبود میگم نیست لا اکراه بدین خب هیچ اکراهی نیست تو فقط اگه میخواد شاهد بشو و بعد ببین که بود بگو هست نبود بگو نیست و به عوامل تاقیانی که داخلی و خارجی. ممکن مانع بشمگر نیست نیست نیست نیست نیست، پشت پا بزن. در این صورت بستم سه کبل اور و توس ها. در این صورت شما چنگ میندازین به یک ریسمانی که حالا ببینیم تجربه بکنیم. لذا در این حلقه شما، به کسی نخواهید گفت چون دیگه از حالا با بعد این مطالب شما باید بدونید که با دیگران سر سرکار دارید بحث خودتون نیست بحث خودتون این جلسه، اون جلسه حل و فست میشه ولی شما به کسی نخواهید گفت که ایمان داری، عقیده داری، باور داری، مستر شدی، اشتیاق داری، اینا نیست هنوز اون کسی که نمیدونه این مسئله چیه دیکتاتوری زورگویی اگه ما بهش بگیم باید ایمان داشته باشی او به چی ایمان داشته باشه او هنوز چیزی نمیدونه چرا باید ایمان داشته باشه بنابراین باید بیاد تست بکنه آزمایش بکنه بعد از آزمایش بگه من قبول کردم قبل از آزمایش با اون چیزش به درد ما نمیخوره ایمانش هم به درد نمیخوره چون همطوری علکی گفته بعد از تست که میتونه بگه من قبول کردم لذا تنها شرط این که من تو در این حلقه برخوردار بشیم تنها شرط شاهد بودنه زمه ای دل در شاهدی بند که حسنش بسته زیور نباشد از این آگاهی نوشو جام بکن و بیابو به حرف منم گوش بده شاهدی رو آغاز بکن که استفادهی که برای شما داره حتی اگر بسته زیورم هم بهتون بدن انقدر فایده نداره حافظ این توصیه رو میکنه خب حالا شاهدی خیلی مشکله محقق بودن شاهد بودن دیگه یک محقق کارش چیه؟ یک محقق یاد میگیره افده اگه محقق واقعی باشه یک محقق یاد میگیره که شاهده میره باید مثبال سر کار بود؟ نبود تموم شده رفت بنابراین این انتظار بالای نیست این انتظاریست که هر تحقیقی نیاز به محقق داره هر محققی باید شاهد باشه بنابراین ما در این حلقه وارد میشیم بینظر و بود و نبودشو دیگه امتحان میکنیم اگر بود استفاده میکنیم نبودم که می‌گیم خداحافظ خداحافظ خب پس مسئله در مورد حلقه هم حل دیگه بله موضوع پیچیده‌ای که نبود که دوستان سوالتونو رو بشنونن خشن شما تو این حلقه‌ای که نشون دادید خدا رو بالا نشون دادید بله او بود شبکه هوش جمعی بود خدا رو آوردید بالا میخواستم ببینم که این هوش جمعی یا این اویی که تعریف میکنید پس با جنسش با اون چیزی که برای خدا تعریف میکنید متفاوته. یه سری ها که ما جهان اصلی خودش مخلوقه. روح القدس، <تصفيق> روح الامین، جبرائیل مثلا میگه که بر پیامبر جبرائیل نازل شد. جبرائیل نازل شد یعنی آگاهی نازل شد. یعنی در واقع این هوش جاری شد. این آگاهی جاری شد. توجّه فرمودین حالا اون دیه ها یه این پیش میاد اینجا ما یه جور دیگه میخوایم. در واقع هوشمندی ها که در جان هستی خودش مخلوقه از کجا اومده این هوشمندی کی این هوشمندی رو قرار داده احسن گفتیم مطرب ساز این سازه خدا در واقع با این ساز داره چیکار میکنه با این هوشمندی داره کارشو در جان هستی انجام میده یعنی انجام داده با این هوشمندی اون رو به جان عیسی کرده اعمال کرده خودش نیست قد خود خودش نیست صاحب این هوشمندیه پس اینجا در واقع این صاحبه و اینجا این هوشمندیه که حالا اسامی دیگر این هوشمندی روح القدس روح الامین جبرائیل و این جور ماجراها رو شما میتونید داشته باشین ارز کردم از زاویه متون مذهبی به یه تعریفی میرسیم از زاویه دانشگاهی و آکادمیک، اگه بخوایم بحث کنیم اصولاً هوش جمعی و این ماجراها رو ما به یه زبانهای دیگه هم میتونیم بیان بکنیم و بهش برسیم خب حالا لذا مونه اینه که این موضوع رو یه خورده ای بهش حالا نزدیک بشیم تا اینجا رو پله عقل بودیم خب حالا یواش یواش می‌خوام آماده بشیم بریم رو پله اش رو پله اش گرفتیم دیگه حرف و حدیث اینا نداریم یه سیبه باید گاز بزنیم ببینیم که چه مزه میده تا اینجا برای خالی نبودن عریضه ما این توضیحاتو دادیم که یه جوری بفهمیم که چی کار میخوایم بکنیم چی میخوایم. خب برای اینکه این هوشمندی رو متوجه بشیم که چیکار میخواد بکنه دوستانی که از بدو ورود به این کلاس اول من این تعریف دیگه بکنم بیام یه ماجرایی رو توضیح بدم خدمتتون کاری که ما تو این حلقه میخوایم انجام بدیم با این هوش جمعی اینه که این هوش جمعی یک اسکن روی ما انجام بده من اسکن رو تعریف کنم بعد بیام این رو دنبال بکنم اسکن یعنی زیر ذره بین گذاشتن اعضای وجودی کاویدن کاوش کردن حالا معادل فارسی اسکن یه همچین چیزای دیگه هست حالا باید پیدا کنیم چون مشکل واژه پردازی رو شدیداً داریم حالا لذا ما یه کاری که می‌خوایم با این هوشمندی انجام بدیم حالا به عنوان مقدمه و دستگرمی و این صحبت ها اینه که یک اسکنی با کمک این بوشمندی انجام بدیم در این اسکن مواردی از وجود ما اشکالاتی رو شناسایی بکنه به ما علامتش رو بده و بعد حذفش بکنه و ما از این طریق یه ارتقاء وجودی داشته باشیم بهبود داشته باشیم شفا داشته باشیم درست شد یا نه این علامت دادن به صورت تیر کشیدن زربان زدن درد گرفتن لرزه تشنن شدن، گرم شدن دیدن نور رنگ و این احساس جریانات مختلف روی ما اتفاق میفته خب پس در واقع اون کاری رو که اول صحبتمون گفتیم نگری و دوم این و اینا این کار قرار این هوشمندی ما، هوش جز، این هوش کل کنم جز ماست، طاق و ما از از جدا افتادیم الان یه هوش سلولی داریم. یه هوش اینجا داریم و یه هوش کلتر داریم که همون هوش جمعیست مجموع این هو ها در واقع یکیست. با استفاده از این قضیه این اسکن رو انجام بدیم خب دوستانی که از بد ورود به کلاس تا این لحظه علامتهایی رو بدنشون بهشون داده پارسای رو بدنشون بهشون داده که مفهوم همین اسکنه و چیزهایی رو به اونها نشون داده دستشون رو بلند کنن بله؟ بله بلند کنین بلند کنین خب حالا معنیشون متوجه نشدین ببینید این اسکن شما که نمیدونستین شما که نمیدونستین که در واقع بدونه که بدونید به طور نامحسوس در معرض اسکن قرار دارید نمیدونستین که خب لذا کسانی که از بعد به ورود دیدن که یه نقاطی از این وجود داره به اونا پارس میده قلبشون سر یا حالا به هر صورت مختلف مرانی آمار میگیرم بعد زنگ تفرید داشته باشیم دستشونو رو بلند کنن <تصفيق> خب حالا اجازه بدین توضیح میدم همه رو توضیح میدم اجازه بدین حاضرین اجازه بدین دوستان عزیز اجازه بدین دوستانمون چایارو ریختن رو ریختن سرد میشه یک گروب فقط خواهش میکنم یک گروب چون بحثامون زیاده وقت کم میاریم خواهش میکنم خودتون سر یک رب ساعت دوباره تشریف داشته باشیم تا با هم صحبت کنیم خیلی ممنون